بنامه خدای نام مهربان خدای یگانی مهربان افسنهها قدیمی ترین میراث فرهنگی بشرند که در ظاهر ساده و بی خودشون پیامها و ابراتها و نکات ارزشمند بسیاری نهفته دارند. با مطالعه ها میشه درباره اندیشه گفتار و به طور کلی زندگی مردمان مختلف اطلاعات و تجربیاتی رو کسب کرد از این رو میشه افسانه ها رو از جمله مهمترین وسایل آموزش و پرورش دانست و ما افسانه به نام آفو که افسانی زیبایی از سرزمین ما ایران برگرفته از کتاب افسانه های مردم ایران با بازنویسی جمیله فرهانی امیدوارم بشنوید و از شنیدن اون لذت ببرید روزی روزگاری در زمانهای خیلی خیلی دور زن و شوهری فقیر و بیچیز زندگی میکردن. اونا هیچی نداشتن نه مالی نه ثروتی و نه بچهی که به دادشون برسه خلاصه آه نداشتن که با ناله صدا کنن زن که از این وضعیت سخت نداری خسته شده بود روزی به شوهرش گفت مرد این که نشد زندگی تا کی باید دست روی دست بذاریم و گرسنگی رو تحمل کنیم من که دیگه توان ادامی این زندگی رو ندارم مرد آهی کشید و در جواب زنش گفت آخه دیگه چیکار کنیم از دیوار همسایه بریم بالا و زن حرف شوهرش رو قطع کرد و گفت استغفرالله این چه حرفیه که میزنی؟ ما یه عمر مرد با آبرومندی زندگی کردیم حالا این دم آخری از دیوار همسایه بالا بریم و خودمونو از چشم خدا و خلق خدا بندازیم؟ مرد توزخندی زده و شلو نکن زن حرف حرف میاره حالا ما یه چیزی گفتیم تو چرا باورت شد؟ آخه من کی از دیوار مردم بالا رفتم که این دومی بارم باشه زن گفت خدا بدور خدا بدور برشیتون لعنت ولکن این حرف رو باید یه فکر خوب و کارساز بکنیم مرد گفت چه فکری؟ ما که هیچی برامون باقی نمونده زن مکسی کرد و گفت چرا؟ چرا یه چیزی برامون باقی مونده؟ مرد با تعجب پرسید چه چیزی زن؟ زن گفت لباس عروسی من یادته؟ اونو بردار و برو بازار شاید با فروش اون تونستی پولی به دست بیاری و یه کاسبی درست و حسابی راه بندازی مرد بلا فاصله گفت آخه لباس عروسی تو به درد چی میخوره ها؟ زن جواب داد خدا رو چه دیدی؟ شاید شاید کسی از اون خوشش اومد و اونو خرید مرد؟ قبول کرد و لباس عروسی رو از دست زنش گرفت و راهی شهر شد راستی داشت یادم میرفت اسم مرد افسانه ما آفو بود بله آفو آفو در بین راه به مرد کشاورزی برخورد که در حال شخص زدن زمیناش بود کشاورز با دیدن آفو پرسید داری کجا میری؟ آفو جواب داد دارم میرم شر لباس عروسی زنم رو بفروشم مرد کشاورز با خوشحالی گفت لباس عروسی؟ چه خوب هفته دیگه عروسی دخترمه اون لباس عروسی میخواد بده بده بده ببینم اگه خوشم اومد اونو ازت میخرم. آفو بخچی لباس رو باز کرد کشاورز نگاهی به لباس عروس انداخت و گفت خوبه خیلی خوبه حاضرم اونو با یه گاو نر عوض کنم آفو با خوشحالی گفت منم حاضرم دستت در نکنه بعد لباس رو به مرد کشاورز داد و گاو رو گرفت و به طرف شهر براه افتاد آفو به راهش ادامه داد رفت و رفت تا به مردی رسید که دوتا میش داشت مرد با دیدن آفو گفت سلام غریبه داری کجا میری؟ آفو جواب داد سلام دارم این گاوه نر رو به بازار میبرم تا بفوشم مرد با حسرت گفت ای کاش من به جای این دومیش یه گاوه نر داشتم بعد ادامه داد ببینم میخوایی میشای منو با گاوت عوض کنیم؟ آفو بلا گفت چه حرفا؟ گاو من؟ گاو آهن میکشه و زمینو رو میزنه چرا باید اون رو با میشای تو عوض کنم؟ مرد گفت ولی میشای منم شیر میدن هر سال میزن تازه پشمشونم به کارت میاد خب حالا چی میگی؟ آفو کمی فکر کرد و گفت باشه حاضرم گاوم رو با میشای تو عوض کنم و بعد گاو رو به مرد داد و میشای اونو گرفت و باز هم به راهش ادامه داد آفو رفت و رفت تا به مردی رسید که از شهر می اومد و دوتا سگ تازی داشت مرد از آفو پرسید کجا میری؟ آفو جواب داد دارم به بازار میرم میخوام این دوتا میشو بفروشم و با پول اونا کاسبیت درست و حسابی راه بندازم. آخه من مرد حرف آفو رو قطع کرد و گفت اه فروختن میشا دردی از تو درمون نمیکنه بیا بیا و اونا رو با ده تا سگ تازی من معامله کن اینجوری برات بهتره آفو با شنیدن این حرف عصبانی شد و گفت این چه حرفیه که میزنی؟ مگه من دیونه شدم که میشام رو با ده تا سگ تازیه به درد نخور معامله کنم مرد گفت سگای من به درد نخورن؟ آفو با قاطعیت جواب داد بله بله که به درد نخورن خودت بگو سگای تازی تو به چه دردی میخورن ها مرد محکم گفت سگای من سگای شکارین میدونی یعنی چی یعنی اونا برات خرگوش و روباه شکار میکنن مرد بر تو میتونی اونا رو بفروشی و با پول اونا یک کاسبی درست و حسابی راه بندازی و ثروتمند بشی آفو با شنیدن این حرفا فکر کرد گفت باشه طبول میکنم این میشه تو به بعد میشه رو به مرد داد و سکهای شکاچی رو گرفت و گراه گفت آفو های شکاری رو گرفت و رفت و رفت تا به مردی رسید که خروسی بزرگ در دست داشت. مرد از آفو پرسید: آها آی غریبه، داری با این سگای شکاری کجا میری ها؟ آفو جواب داد: دارم میرم شهر، میخوام این سگای شکاری رو بفروشم. مرد گفت: بیا با هم یه معامله کنیم رفیق. آفو پرسید: معامله؟ چه معامله؟ مرد گفت، یه معامله درست و پرمنفعت بیا سگای شکاریت رو با خروس من معامله کن، این کار به نفع توه آفو با اصابانگیت گفت مرد حسابی این حرفا چیه که میزنی؟ من دوتا سگ شکاری رو بدم بجاش، یه خروس بیارزش گیرم بیاد؟ مرد با ناراحتی گفت درباره یه خروس من اینجوری قضاوت نکنیم این خروس یه خروس معمولی نیست تا حالا کلی پول و ثروت نصیب من کرده آفو با شریدن این حرف کمی آروم شد و مرد ادامه داد خروس من یه خروس جنگیه توی تمام مسابقه ها پیروز شده و من با اون کلی جایزه و پول گرفتم نمیدونی جوری خروس مقابلشو نابود میکنه کاشی یه دفعه، کاش یه دفعه، فقط یه دفعه اونو توی میدون مسابقه میدیدی، اون وقت هرچی داشتی میدادی و این خروس جنگی رو میگرفتی آفو گفت، خب، خب، اگه اینجوریه که میگی من، من حاضرم سگای شکاریم و با خروس جنگی تو معامله کنم خلاصه آفو، سکه های شکاریش رو به مرد داد و با خوشحالی خروس جنگی رو گرفت و به راهش ادامه داد و رفت و رفت و رفت. آفوی افسانی ما رفت و رفت تا به بازار شهر رسید لحظه ای توی حیاهو و شلوغی بازار گیج و منگ ایستاد و نمیدونست چیکار بکنه تا اینکه مردی به اون نزدیک شد و گفت اجب شانسی بالاخره پیدا شد بده خروس رو بده تمام بازار رو برای یه خروس زیر رو, رو کردن بده بده اونو بده آفو با تعجب گفت نک چی, چی رو بدم؟ این خروس مال خودمه اونو با دوتا سگ مرد حرفونو قطع کرد کرده گفت البته که مال توه. هست. من که نگفتم مال منه فقط میخوام اونو با این کلاه پوست اصل عوض کنم همین حالا زود باش بده که خیلی کار دارم آفو با عصبانیت گفت نمیدم من که دیوونم که خروس جنگیم رو با یک کلاه پوست کهنه و بی ارزش عوض کنم نه برو برو یه خروس کن. مرد گفت گفتم که تمام بازار رو زیر و رو کردم اما دریق از یه خروس بیارزش آفو بنارتی گفت خروس من بیارزش نیست اون روزی ستا خروس و توی جنگ مغلوبه میکنه اصلا کلاه خودت بیارزش رو به نخوره مرد گفت چه حرفا کلاه من هم نوع هم بلند تازه پوستش اصله اصله باور کن اگه اونو بذری سرت تو بری پیش زنت اون خوشش میاد بیا بیا بگیری بزر سرت آها، ببین ببین چقدر بهت میاد عالیه خلاصه مرد اونقدر از کلاهش تعریف و تمجید کرد که بالاخره آفوی افسانهٔ ما راضی شد خروسش رو بده و اون کلاه پوستی رو بگیره بعد هم با حالت خاصی کلا به سر به طرف خونش برای آفو کلاه به سر رفت و رفت تا به رودخونه ای رسید و چون خسته بود کنار رودخونه نشست داد دست و صورتش رو آبی بزنه و یه کمی اصراحت کنه اما به محض خم شدن کلاه از سرش افتاد و جریان آب اونو با خودش برد آفوی بدشانس ما با ناراحتی و قدم کند به طرف خونش براه افتاد رفت و رفت تا اینکه شبهنگام به نزدیکی خونش رسید جلوتر که رفتید کاروانی نزدیک خونش بیتوته کرده آفو نزدیکتر رفت و از یکی از کاروانیان پرسید اینجا چه خبره؟ شما از کجا اومدین؟ مرد نگاهی به آفو انداخت و گفت به تو چه که ما از کجا اومدیم اصلا تو کی هستی و نزدیک کاروان ما چیکار داری ها حتم دارم میخوای کاروان ما رو بزنی ها خوب گیر آوردم آفو با عصبانیت گفت کاروان زدن یعنی چی؟ چرا حرف بیخود میزنی مرد اینجا نزدیک خونهٔ ای منه دارم میرم خونم مرد کاروانی گفت فکر کردی میتونی دوست بودن تو ماسمری کنی ها؟ آفا گفت، چرا بی خود تهمت دزدی می زنی مرد؟ بذار درم خونم، باره کنار، برو کنار بذار رچم مرد کاروانی گفت، کور خوندی من نمیذارم به همین راحتی از چنگم فرار کنی و بعد با صدایی بلند فریاد زد آهای دزد آهای دزد آهای دزد در عرض چند دقیقه کاروانیان دور آفو حلقه زدند و آفو در محاصرهٔ اونها گیج و منگ و متحیر نمیدونست چیکار بکنه تا اینکه یکی از کاروانیان گفت بهتر اونو به نزد بازرگان پیر کاروان ببریم اون میدونه با این دزد دروغگو کار کنه بعد آفو رو کشون کشون به نزد بازرگان پیر کاروان بازرگان پیر کاروان با دیدن آفو نگاهی به قد و بالای آفو انداخت و گفت این وقت شب کجا بودی؟ آفو جواب داد برای کسب و کار به شهر رفته بودم و الانم داشتم به خونم میرفتم که بازرگان حرف اونو قطع کرد و پرسید خاب بگو ببینم چه کسبی کردی؟ آفو داستان خودش رو برای بازرگان پیر کاربان تعریف کرد بازرگان خندید و گفت <تصفيق> پس آماده باش که زنت حسابی خدمت برسه چنان آشی برات بپسه که یه وچب بروغن روش باشه من حد دارم به اینکه که چشمش به تو بیفته <تصفيق> لفته پاها تو کنه تو یادگار عروسی شو به باد دادی حالا منتظر هر بلایی باش آفو با عصبانیت گفت نه نه اصلا اینجورا که تو میگی نیست اون زن مهربونیه و منو هم خیلی دوست داره من مطمئنم وقتی ماجرا رو براش تعریف کنم میگه فدای سرت لباس عروسیمو میخوام چیکار بازرگان پیر خندید گفت <تصفيق> چه خوش خیالی من من شرط بیبندم اگه زن چیزی بد نگفت و کتکت نزد همه کاله هاگ من مال تو ولی اگه کتکت زد و از خونه بیرونت کرد خونت مال من قبوله آفو قبول کرد و به همراه بازرگان و دو نفر از کاروانیان به در خونش رفت بازرگان و کاروانیان خودشونو کنار کشیدن و منتظر منتظروندن آفو در رو کوبید زنش در رو باز کرد و با خوشحالی گفت وای آفو جان خوش اومدی نمیدونی خط نگرانت بودم تا حالا کجا بودی؟ دلم هزار را رفت بیا بیا تو که دیگه طاقت دوری تو ندارم بیا تو بعد؟ در است. بازرگان و کاروانیان آروم به روی بام خونه رفتن و از نورگیر بام آفو و زنش رو زیر نظر داشتن زن مثل پروانه دور شوهرش میچرخید و بالاخره ازش فرسید خب آفو جان بگو ببینم کاسیبی رو چی کردی؟ تونستی لباس عروسیم رو بفروشی؟ آفو، همه داستان رو از اول تا به آخر برای زنش تعریف کرد بازرگان و کاروانیان از روی بوم خونه منتظر اکسل عمل زن آفو به انتظار نشسته بودن در این موقع زن آفو نگاهی به آفو انداخت و گفت قصه نخور آفو جان کسب و تجارت که بیزرر نمیشه یه دفعه زرر میکنی یه دفعه سود تو نباید قصه بخوری حالا که سالم مرگشی خونه خدا رو شک لباس عروسی منم فدای سرت اونو میخوام چیکار بازرگان پیر با شنیدن حرف یه زن آهی کشید و گفت آه به این میگن زن خوب بعد امر کرد تا همه کالاهاش هاش رو بیارن و به خاطر قولی که به آفو داده بود اونا رو به اون تحویل داد آفو ثروتمند شد و با زنش به خوبی و خوشی در ناز و نعمت زندگی کرد البته اینو هم براتون بگم که آفوی افسانه ما بخشی از کالاهای بازرگان رو به خودش پس داد و فقط در حدی برداشت که بتونه با اون کسب و کار حسابی راه نزد افسانه ایرانی رو براتون نهل کردم برگرفت از کتاب افسانه‌های مردم ایران با بازنویسی جمیله فرهانی مردم کوچه و بازار افسانه‌ها رو در طول تاریخ حفظ کردن و اونا رو سینه به سینه و نسل به نسل منتقل کردن اما چه بسیار افسانه‌هایی که همراه حافظان پیر یا جوان خودشون به خاک سپرده شدن یا فراموش شدن از این رو جماوری سخت و ضبط افسانه‌ها امری ضروریه که همتی والا متطلبه. هزار افسان کار مشترکی بود از نویسنده و سردبیر زینت سالحبور ویراستار سریلا کریمی اجرام مهران دوستی صدابردار ستاره همیدی تیه کننده زهرا عبدالله زاده تا افسانه دیگر بدرود